Sean Connery her boy Francis Sternhagen came to the king Kitam Khan motarjim abson e panahi odire du Hans Jabonige pourr. Karregdan Peter Heims. Jahan-e Begane. بمین غمر مشتری 22 23 مگ فاصله از مشتری 26۷ مگ فاصله از ایستگاه فایی ه ساعت دفعوت مراجع صففین تدرکات یک بار در هفته جاذبه سطحی یک ششم جاذبه زمین سخراج مدن مقرر بیست و گروه ملل سرعتی تداد پرسونل دو هزار کارگر هزار بخش تامین هفت سد و نفر بخش مدیریتی و نگهداری بستگان مدیران سوه چهار و بالاتر مدت سفر یک سال بخش بیاتی مارشال فدرال و اعزای تیتیا، چهاردن نصب کردن گفتن یه آزمایش موقعتیه اونو هنوز در جاشتون هستن همونهایی که موقعتیه میشه اون گیره رو بدی به من؟ را سیبتون چطوره؟ معمول خریدونه اون چی میگه؟ بهت میگم بهتون چی گفت؟ میگه سیبت دهن تو بخورد اونو همیشه سعی دارن لفتش بدن انگار بعدشون هم نمیاد که کلی خرابکاری و اونو مسته هر هفت تا کارگر کار کرده تو قرار خوندی برای هر شیف هشته کاری این چیزیه که نوشتی 8 و سفید و سیاه جه میخوام خودشون رو شیرین کنم من میتونم خودم رو شیرین کنم یه درار ملاقات میخوام شاید به این معمول جدید احتیاج داشته باشیم طبق قانون نمیتونم این لباس ها رو خوب درست کنن سده هفته دفعی فکر کنم کباب بشم لباس د شدهتی گرمون رو کم کن و خونکتر میشی رسی؟ هم تیبون از خودم گفتن خدایا، خدایا، ننکبوت، آخی، ننکبوت متنفرم بکشش، بکشش ای، تارلو، چیزی ریشت بزنه؟ بکنی که لعنتی، خب، ایش می کنم یک کمکم کنه کمکم بگاریم آخی، اینجا که شده، دخص بردار ننکبوت خب، ایش می کنم کمکم کن چطور ب اخه موجه صدق وجود نداره خودت چیکار کردی اینو با کاشیت خاص میگم با کاشیت خماک در داخل لباس بشه ولم کن ولق اللازتی هر ممکن اخر یکی به دادا برس یکی ز افتاد داره واینا به دستش لباسه باز فرارش کری فرنش مرش واسه فرار ولم کن دو دیگه حاضر یه جور شیر خامه ایه متاسفانه بله از اون یکی دیگه نیست من بایی سیمه دندون به سختی حرف میزنم میدونم زیاد طول نمیکشه چقدر دیگه طول نمیکشه خیلی میکشه. زور یعنی شیف. چقدر زور چقدر زور برای چه کاری؟ از دست این سیمه دندون راحت شد دندونوی مرتب نمیخوایی؟ اهمیت نمیدم اگه سوونتو نخوریم بقیهش هم کجکوله میشه شیر خامدار نداریم شاید همه شو من خوردم مارشال هستم، امشب شب پیش خوب پیش رفت. فقط چند نفری زیاده روی کرده بودند. امشبم نگهبانی میدی. ساعت 6 تو دفترتون هستم. مارشال، منتونن هستم. درباره ی حادثه تو ایسکا چیز زیادی ندارم بگم. به نظر میاد چند نفر برای تفریح از ایسکا رفته بودند بیرون. شرکت خاسته جسد یا هرچی باقی مونده پاس فرستاده بشه. مونشم مسلمه جنایت نبوده. چون وقت این اتفاق افتاده دو نفر شاهد بوده. منم ولن گای از این اتفاقا میفته. بعضیا نمیتونن محیط اینجا رو تحمل کنن. خیلی خب، همش اینا بود. آ، راستش به امسرت بگو بخش حمل و نقل بلیط رو براش گرفته. تو هم وقتی رفتی دفترت میبینم. نگران نباش، به این وضعیت عادت می‌کنی. چوبلیتایی Oh, uh, خانم و آقای رینولدز برای ملاقاتی یه دوست تو اسکای فضای بلیت میخواستن منم بهشون گفتم ببینم چیکار میتونم بکنم خب پهتار من دیگه برام شب سرشان میبینم هفت صفیقی از ایت مونده یادم نمیره بسار خوبی باش باش باش من میدونم مهموریتو موزقرفیه و, و میدونم چه شرایط سختی تو داری فقط یه فرصتی بده انگذران بعد نیست میدونم میدونم آنی آنی آنی آنی آنی آنی آنی آنی آنی آنی آنی آنی آنی There you go. You smell می دونم که نجاتو از مرت هستم. و باید شما رو خوب بشناسم. شما باید منو بشناسید. من امیدوارم بتونم به اعتماد شما رو جلب کنم. او چه کارم؟ شروع تاجیوب کردن. تو باید قسطت جدا بخوری. چه سواری داره؟ ام فلو اسپکتر هستم بخش مالی مطمئنن دارم از طرف همه میگم ما به شما و خانوادهتون خیر مقدم میگیم به خانم آنیل و پسرتون بگین اگه چیزی نیاز داشتن با من تماس بگیرم خیلی متشکرم خانم اسپکتر من به همسرم میگم درزم اسمش کراله لازم بنده هم از طرف همگی به مارشال آنیل خوش آمد بگم ایشون از حالا به بعد کارشون رو اینجا شروع میکرم و به زودی متوجه میشن که اینجا مثل شهر مدنه دیگه هست بدون هیچ مشکلی خوشحالم می میشندم بقید به قطع داشته باشین که این افراد بسیار پرتراش هستن از زمانی که من اینجا مدیریت رو به افته گرفتم رکورد تورید رو شکستیم برای قطعه میشه گفت در تورید پیشرو هستیم و تمام افرادی که اینجا هستن بابتش پاداش میگیرن کار خوب و پقط آدمهای قانه انجام میدن من از اینا به سختی کار میکشم در مقابل بهشون اجازه تپریه میدم بنابراین شما هم باید بهشون اجازه تپریه ها برید و تا زمانی که مشکلی ایجاد نکردن باشون با ایشون کاری نداشتی باشه متوجه منظورم شد این مرشان بله متوجه شدم اقای شپارد ما همامون هرفهی هستیم مطمئنم همین طوره یه سری به دفرم بزنین بیشتر با هم صحبت کنیم آتون یه سر میزنرم نمیخواد خیلی به خودت درد سر بدی این میگه چه اون روشش همینطوریه، فقط فقط دوایی من نظرش از روش اون خوشم مید پس سر به سرش نزن اون آدم مزخررفله یه آدم مزخرف قدرتمند اون میخوااسته از کارای تو در درکنه آخرین مارشال خاری به کارشون نوش اونام هم همینه میخوان وقتی اوضاع عادی باشه اونام پولشون رو در میارن. کسی اینجا سلامت اونا رو تضمین نمیکنه. کنه اونام به خاطر گردش اینجا نیمدن چیکار میکنه؟ اون احم داره سوار آسانسور <سیم> میشه. داره به میی وااست محافظ وارد آسانسور میشه. کردم من از این پیغام و پسغام و متنفرم من یه ترسو هستم نمیتونم تو صورت نگاه کنم و چیزی رو که دلم میخواد بهت بگم اگه تو رو روبروم این ساده بودی تصمیمم رو عوض میکردم ولی الان قصد ندارم تصمیم عوض کنم من دوسته دارم لطفا اینو درک کن من این کار نقشه نکشیده بودم باور کن دیگه نمیتونم تحمل کنم و این خیلی برای من زیاده میدونم قبلا خیلی سر این مسائل با هم به نتیجه رسیدیم من گریه کردم و تو هم به من اطمینان دادی که جایی بعدی که میریم خیلی فرق خواهد داشت ولی هر اینطور نبوده نمیتونه باشه تا دیروز که یه چیزی در من رخ داد تحمل ندارم ببینم که پل هنوزم تو یه جای سرد و تیر و تار داره زندگی میکنه. اون یه بچه هست. هرگز پاش رو روی زمین نذاشته. هرگز اون عکس ها رو می بینه و کتابایی درباره زمین می بعد یه جایی مخفیشون میکنه که تو ناراحت نشی تو متوجه نیسته که اون یه بچه هست. نیاز به محیطی داره که از هوای واقعی تنفذ کنه جایی که خطر آتش و انفجار نباشه جایی که بوی زندگی بده نه جایی که مجهز به سیستم تنفذ مصنوعی باشه من اعتراف میکنم که به اندازه تو خوب نیستم برای همین پلو با خودم میبرم خونه دوستت دارم تو مستحق این نیستی تو مستحق بهترینی من را به بخش آنیل با حات زرف چند روز آینده قبل از این که به سوی زمین حرکت کنیم تماس میگیرم خب اینجا چی داریم؟ والری تو قسمت مالی چه خبره؟ ما کل منطقه رو 36 ساعت زیر نظر داشتیم و همه چیز مرتبه تا دو هفته دیگه اونجا رو زیر نظر داشته باش و بومبا اونا پیدا شدن کجا؟ نمیدونم سرکارگر اعلام کرده پیدا شدن و بعد به من گفت که فراموشش کنن نیلسانو ما داریم درباره بومبای هستهی صحبت میکنیم ممکن نیست رو و بعد پیداشون تو میتونی شونت رو گم کنی ولی بومبای هسته ای رو نه من میخوام بدونم اونا کجا پیدا شدن و کی اونا رو پیدا کرده فهمیدی؟ بله قربان آفلی اندرسون استیتار موضوع اسمسار معدن چیه؟ یه احمق به اسم کین تصمیم میگیره بدون لباس مخصوص بره بیرون هنوز هم دارن آسر جسدش از روی دیواره آسانسور پاک میکنن کسی همرایش نبوده که اونو پرت کنم تو چند نفر سعی کردم وارد محفظه بشن ولی اون در قفل کرده بود امکان نداری یه جنایت بشه حتمام قصد خودکشی داشته قربن یاد داشتی هم گذاشته؟ به بخشی قربن یاد داشتی هم گذاشته؟ تا جایی که ما میدونیم نه از هست کجا میدونی خودکشی بودی خب توجیه دی ای نداره اون قطعا میدونست داره چیکار میکنه امکان نداره شما پرارچین تو محفظه خروجی بعدا بیافتین تو حسانسور حتما باید در محفظه رو باز کنین و دکمه ها رو فشار بدین و محفظه رو ببندیم متشکرم خواهش میکنم خب فینک جایگاه لوله ها چطورن فقط یه نشتی بوده ما فعلا ترمیمش کردیم ولی بهتره عوض بشه گیل عوض آرومه چند تا تلفان در مورد سر و صداها بوده چیز دیگه ای نیست کی سفارش این بستای فشار داده اینجا نه نمیدونه جنگ شما دکتر من گفتم صد تا نه هزار تا شما گفتین هزار تا من گفتم صد تا که قایدتاً با هزار تا اشتباه نمیشه تلفازش هم مثل هزار تا نیست گوش کن یه باره دیگه میگم من نگفتم هزار تا گفتم کاملا فرق میکنن، به نظر شما با هم فرق نمی کنن؟ شما دیگه که هستیم؟ شما دکتر لازاروس هستیم؟ بله، اداتو از پیری مو خوب میشین، اینم شوخی و دکترها، شما ماشال جدید هستیم؟ بله میخوام با تو صحبت کنم من شاهد دارم اینو قبولا نشنیده بودم، واقعا خنددار بود ببخشیم یه یه نفر بدون پوشیدن لباس مخصوص وردعت مطور شده بله چند روز پیش هم یه نفر لباسش رو آندن استرش خارج کرده. از این اتفاقا اینجا خیلی میافته چند وقتی اکبر. نمیدونم فقط رخ میده. چرا؟ من را شناس نیستم، نمیتونم بگم چرا. بعضی‌ها بعد از مدتی صبرشون تموم میشه. کال با چی کافی کردین؟ نه. چرا نه؟ اولا که شرکت می‌خواد جسد سریعاً پس فرستاده بشه. دومی که وقتی کسی خودشو رو تو اتمسفر زیر صفر منفجر می‌کنه، چیزی برای بررسی باقی نمیمونه. و سوامی که داری بیمانی صحبت میکنی بله میدونم من میخوام یه گزارش از اتفاقاتی که در عرض شش ماه گذشته اینجا رخ داده به من بری قیلی هم زود میخوام و ما اینجا رو رو سنت خراب میکنم دکتر اینم شوخی یک مارشاله فرمازه نمیدونستم چی دوست داری منم هرچی بود آوردم تو باید یه چیزی بخوری با شکم خالی نمیشه مجدم رو دستگیر کرد می‌دونم چه احساسی داری، می‌فهمم بعد از می سفرم همسرم طلاق گرفته و با یه مرد دیگه ازدواج کرد من دو تا دختر دارم اونا به اون مرده میگن بابا همسرم گفت خوشحاله گفتم یعنی چی؟ یارو مثل برج زهره ماره گفت آره شاید خیلی شاد نباشه ولی همیشه خونه است دیدم زیاد بیرانه میگه قضا رو بخور بده باشه میخورم آدم های خوبی هم هستن که تو رستنهایی در بیارن منه درسته میخوام منفجر بشم نه نمیشیم من خیلی ملیونی کارای تو هستم راستش قضیه اینی که من برای یه مدت میخوام تنها بشم میفهمم مارشل اگه چیزی لازم داشتی یا کسی رو خواستی که بایش حرف بزنی میهم زنگ بزن مارشل شما جواب در یافت کرده سعی دارم به خودم مسلط باشم و مثل همیشه کنم این بارم خراب کاری کردم من از این پیغام و پسقام متنفرم من یه ترسو هستم نمیتونم تو صورت نگاه کنم و چیزی را که دلم میخواد بهت بگم اگه تو روبروی این سده بودی قسمیم و محوظ میکردم و الان هونیل هستم الان میام برای نقشه نکشه بودم باور کن دیگه نمیتونم تحمل کنم و این خیلی برای من سیاده مارشان اون تو بخش قربیه سرگورد منتون منتظر شماست اون تو اسکای تفریه بوده کسی که همراش بوده تا که رو زده وقتی من بهش جواب دادم گفت چاقو داره و اگه از اونجا نرم خودشو میکشه اسمش چیه؟ اسمش ساگانه یازده ماه اینجاست برگز مشکلی ایجاد نگرده الان چطوره؟ هنوز زنده است مواد زده؟ بگه نزده بود اینطور وحشی نمیشد من مارشال اولین هستم بهتره بیای بیرون کسی با کاری نداره آه. گوش کن چه میگم؟ خب گوش کن من نمیتونم بیخیال باشم کسی به تو آسیبی نمیرسومه خاش صحبت کنی؟ صحبت میکنم من نمیخوام به زور وارد بشم و تو هم کار احمقانه ای نکنی باشه؟ برو مسئوله تحصیصاتو بیار برو گربان کدوم هواکشم اتاق تفیه شمار دو هده میشه؟ این یکی بازش کن وقتی بهت گفتم دریکه هیدرولیک رو برای آزاد شدن در رو باز کنم سگال صدامو میشنم میشنم میخوام اینو بهت توضیح بدم خیلی واضع میخوام در ایچه ی هیدرولیکو باز کنم میفهمی؟ چه که باعث میشه این درم باز بشه من میشه که نمیتونی درم رو بسته دیگه داری از بهتره بیایی بیرون رو خودتون نجات بدی سکل این که در بود چه؟ بابتونم یک درم نمیخوام باید در رو بخص کنم کلکم نمیزنم از درم یک به طور مرکوز میشمارم Ben yetebesim. Darbasma. Gerefe varam demişam. میشم canım demiyorum. I don't want to hurt anyone including you. Whatever the problem is, we can درست کنی من تو رو in. Has bu ne şey yapayım? Beni bırakış. Hayır, <laughs> Now I'm going to count down from ten to one slowly. Asta, be yek. Da. Zer... ...do... Gek! Gop! Gop, wakti Hrak hurtinga ber تا کی شکسته همینطور بینیش کبودی زخم گردنش سطحیه کیم بلارو سرش آورده یه کارگر که دیوانه شده بود از این اتفاقا میافته یادتته گزارشت آماده کردم تو ناحیه شکم خروزی داره برای کینای وارد نشفتن عادت به این کارا ندارم بس عادت کن خلاص خوب میشه اگه بذاری به کارم برسم شش ماه گذشته 28 نفر شش ماه قبل چقدر بوده 24 نفر ابتکار عمل نشون دادن. می‌خوای بدونم شش ماه قبل از اون چند تا؟ 2 مطمئنی؟ من نامهربانم، احمق نیستم، البته که مطمئنم، نظر چی؟ نمی‌دونم. تا جایی که میدونم همگی دیوونه شده بودن اینکه آدما اونم با این تعداد زیاد یه دفعه قاطی میکنن خیلی مرموز نیست موندم چرا اکثرشون زودتر دست به دیوونوازی نزدن از ساعت کجا فرستاده میشه؟ اغلب اونا رو با شاتل بعدی میفرستن اونا رو میپیچن و میذارن کنار تا ببرنشون ایسکا اونا رو توی دریا دفت میکنن و از این حرفا و زاررس؟ من قولیل هستم. همین الان تو بیماارستان می بینمت. میدونی الان ساعت چنده؟ آره از خواببی دارم کردی؟ من شوخیت گرفته معنی این چی؟ معنی خاصی نداره گروه خونی تعداد کولیسترول ها این خونه یه آدم مرده است حیلو خوبه الکول دیده نمیشه قضا خورده بوده پروتین کربوهیدرات بازم کربوهیدرات سبزیجاتشو نخورده نیکوتین نداره می آرام از آرام بخشی خود شرکت نو استان برد قنده خونه مگلی بینم عادیه این چیه؟ چ شد؟ نمیدونم؟ گاه زرنگیه ولی مثل من قدیمی شده این چه نمیتونی از تمام دانششت استفاده کنی دکتره شرکت یه بار مصرفم اغلبشون به درد همون یه بار میخوررم یه چیزی اونجاست می بینم تمام وقتم رو سرفیم میکنم که به این کارگر رو مسکم بدن و یا تشخیص بدن بیماری پوستی نداشته باشن اینجا بهتر زیاد رایت نمیشه سلام مواد مخدره؟ آره مواد مخدره چه نوعی هست؟ یه جور ماده نشاور تا حالا همچین چیزی ندیده بودم داروی ترکیبی خودشه داروی انرژیزا حالا فهمیدم اون احمقای عوضی داروی انرژیزا مصرف میکنن یه نوع امفتامینه قوی ترین چیزی که دیدیم حس فوقالدهی بهت میده میتونی کارش آرده ساعته رو در عرض 6 ساعت انجام بدی به خصوص برای کارگرای شیفتی ارتش چند پیش آزمایشش کرده بود ابتدا همه عادی کار میکنن ولی بعد از مدتی جنون میگیرن این کار زمان میبره ولی بعدش مغز تو داقون میکنه گفتی داروی ترکیبیه ممکنه اینجا تایه بشه؟ نه غیر ممکنه باید ارسال شده باشه کار با چکافی نداریم از کسی چیزی نمیفهمه کارگره بیشتر تولید میکنن ما شرکتم سود بیشتری میبری و برای همین اونا سوالی نمیکنم برنامه ریزی مخفی به کسی داریم باره حرفی نزن کارم خوب بود مگه نه Be anwanei qadimie. Bala, شاید آه نو بخش درست آسن چیزی درماردش بهم همه میگی درماردی کی, کی بگم شپرد ایلویم. چقدر باش اجراف بدی زیاد نیست پول میدن که چشمامو ببندم میدونم تو کار بعد انجام نمیدی نمی وانی کار خوبم نمیتونی انجام بدی درسته؟ من شب سرت داغون میکنم چه که میگی؟ آه. اینجا جای قهرمان بازی نیست تو نمیدونید داری سرمسته که چی میزنید داری از مدیر کورت صحبت میکنی اون اینجا باسه خودش کسی داری از صدای هنگفت و حرف میزنی که ما درست اونا رو نمیشیم این بابا با جای بالتر از شرکت دارده میکنم، پای آدم هایت جدی تو قضیخ است این چی را ثاوت من قصد ندارم چیزی رو ثابت کنم اون مدده که میفرستن داره آدم ها را میکشه شد. میخوای با من چی کنی؟ نمیدونم ازم میخوای اصفا بدم؟ نه فقط بین منو شفرد نگرد همینطور پولو تو بگیرو ساکت و آرام راشد من تو رو نمیخوام اونو میخوام نابطه <تصفيق> تو موسیقی آه، می‌دهد می‌کشم تو سلول شما رسی و گفته؟ هیچ کسی سراغاشو گرفته؟ هنوز لا اگه کسی بود به من اطلاع بده باشه سپاتر، آنیل هستم آرانس مواد نیروزه هم میگردی بی چهار ست دوست نمیدونم در مورد چی عرف میزنی ملوته که نمیدونی شبر چقدر بهت پول میداد گفتم نمیدونم چی داری میگی فکر میکنی تا که میتونی طاقت بیاری که مثل باد کنک اونجا تلو تلو بخوری به خصوص که شباکه... یه ده اینجا قطی میکنم خواهی اون تو هم کم کمه سنگین میشه که آدم خفه میکنه برو گمشو نافرین خوبه خوبه خیلی خوشم هم باقید من به چار میخید میکشم من هم شاهد دارم هم دلیل تو رو بر میگردونه نیستگاه فضایی بعد از مدتی میفرمی که اینجا مثل استراحتگاه بود از فکر به کار بنداز شپر تا یه جایی میتونه کمکت کنه وقتی تو داری سختی میکشی شپر داره بهت میخند Eri sarsakdi. Agri binafada gai sarsakdi. Heç kas haqına durabiyatik denes, heç kas. Abide çik ofdan, heç kas. <gülüyor> Fahvidan. میتونم از اینجا هفت تا توپا تا پونسد یاردی بپرستم چیزی نمیخوری؟ نا موشکرم سر چلوقه؟ مثل تو چقدر نخواهی؟ چقدر چیزی که اینجا کم داشتیم یک قهرمان بود چپ ساران کمی بسیمت چپ شیب داره بگم با چه کاری درگیری؟ من جوازه کار دارم. من استخدام شدم تا از این معدن سنگ استخراج کنند. همیشه آدم مثل من همه جای سیستم پیدا میشه من میشه.اد به کارگران گیر نمیدم. اونا باید شاد باشن. وقتی شاد بچن بیشتر سنگ استخراج میکنن و بیشتر دستورد میگیرن و وقتی اونا سنگ بیشتری استخراج میکنن شرکت خوشحاله و وقتی شرکت خوشحاله مرا خوشحالم. به نظر فوقعادم اینجا هیچی فوقعادی نیست. کار انجام میشه همین کاپیه پرسر یه مارشال میاد تا سفر پزایی رو تجربه کنه اونا امتیاز میخوان تو هم میخوای با اونا پرخی نداری حالا اگر رو بشه تو رقم میبره بالا من باید روش فکر کنم دنبال چی هستی؟ تو آدم هایی مثل تو چه مشکلی دارم اگه تو یه قهرمانی پس تو شرکت معدنی ای آو چی کار داری؟ اونا تو رو به عنوان تشبیق یا پاداش اینجا نفرستدن تا اینو میدونی منم میدونم من پروانداتو خوندم دهان گشادی داری برای همینه که این بارم بر پرکتت میکرم اما من قرار نیست همه عمرامو اینجا سفری کنم پس خوش با حال تو ببین، این بازی های تو مسخر است. دیگه خیلی داری، فضوری میکنی. خلافشو به خود ثابت کن کنم هم. بعدا میبیند. اگه دنبار پوری باوشتر از اونی که نشون میدی. بشانه شایدم یه احمقی. احتمالا یک احمقم. اینطوری خیلی خطر میشه. صار صاح وقتها حرف مونتون مونتون مونتون چی شد؟ نور میفته تو چشمت؟ خب خب خب، این که قانون نیست عصب زن تو سردخونه چی پیدا کردم میدونی؟ اگرم من حد نزنم تا خودت به میگی چی پیدا شد یه لاشای صد کیلویی که یکی از آدمات برات فرستاده بود و همینطور اون محموله سفارشی که تو شکمش بود یارو رو انداختم تو زندان، محموله رو انداختم یه جای عم تو توالت سرش شلوق بوده. بهم افتخار میکنی؟ واقعا افتخار میکنم. ظرمه خوبی بود. تو واقعا محموله رو نابود کردی؟ هره؟ دست به کار بدی زدی مرد. بارزش بود؟ حساب مرشم نمیتونی بکنی. ها به نظر مید بیکار شدی. من در مورد تو اشتباه کردم. تو احمق نیستی دیوونه ای. نظر خودت برام ایجاد مشکل کردی کرده برگبار خونت و مدارت تو برگ منداز اینجا جایی تو نیست هر که این محموله رو فرست ده اگه بدون این انفلش کردی مو به سرت نمیذاره من میتونم با هشت تو بازی کنم آرومتر بزن برچار گور خودتو کندی میفهمی؟ zahbat yesin. Lan, Şeferdaş'sa, umpağin çabara. Ye muşkil kuçuru ki daram her şey bu zaman. Fakat çanta azapta çok eto baram beples. O iki tay ki daştı, افرض من همینطوری اونجا نمیام. من واسرحت میکنم. حالا کی اونا رو میخواد؟ با چادر بعدی بپلم. ببینم چیکار میتونم بکنم. بعدم با بخیر ماشا کاچی داریم؟ وارد قسمت زنان شدیم ظاهران اونا متوجه ورود ما شدن و همشون پا به فرار گذاشتن پسثر انگشی ماش چیز واضحی نبوده میگ چ؟ چی؟ چیز زیاده نیست فقط یه درگیری تو رستوران خسارتش یه دماغ و یه دندون شکسته بوده جفتشون هم تو زندونه مارای سرگویدکو. می میزنم دیر نمیشه هنوز چند روز نیست که سرگرد مانتون رو تو الان سرگرد جدید هستی باید نوارا رو لباست باشه همین الان بزنشون بله قربان اتاعت دوشا دارن؟ بله. ادب مو نیده، مارشالو نیده. یخترین بارت که خرابکاری نکنی. نمیخوام. این دیگه به خودت مربوطه. بله همینطوره. چقدر کمکت کنم؟ هیچ، بوتمنی. بله متفهمم. اینجا تو را که خودشه. وقتی شایعه بشه که این آدمو هیچ مشکلی پیش نمیاد. من کسری تو مجبورم دارم که میتونه این انتقال بده. نگران نباش. اون آدم مرده است. چه برد بد بگم اگه این کارمالی نشه بعدی که به اونجا حسن بشه میاد سراغ تو. نیست. حتی کارم به زنگ میدارم. بله مارشال رو چند نفر میتونم ویساب کنم نمیدونم قربان تو خود چی میدونین اکثر ما اکثر ما جوان هستیم خانواده, خانواده دارم at home خودت بازی میکنی و میبازی منم حاضر بودم باعت بازی کنم البته اگه میتونستم نشسته بازی کنم بله خوبم متشکرم سر چلوغه این طرف هم فالازا شده باور نمی کنی اگه بدونی چند تا کارگرد این یک شبه قرار مریض بشن تو هم این یک شمب مریض میشه؟ اگه دنبالی یه شخصیت تمام ایاری، جای اشتباهی اومدی چون، اگه همون آدمی هستی که باید باشی، اینجا نمیموندی برای همینطورو فرستدن شاهده شبا کردن متاسفانه میدونستم همین جوابو میدی تو فکر میکنی داری تغییری ایجاد میکنی؟ خب، پس شیه، محص رضای خدا بگو شاید استادانم تو این گنده آبه. چون فکر میکنم لیاوتم بیشتر از این نمیتونه باشه منم میخوام بفهمم آیا درست گفتم این تشکیلات مثل یک ماشینه چون هر کسی کار خودش رو انجام میده و من فهمیدم که قرار چیزی باشم که خودم دوست نداشتم چیزی که تو این بردم است چیزی که بار... کار منه کار بیارزش منه اونم تو این ماشین قرازه من از این خوشم نمیاد برای همین میخوام بدونم هم اما یا درست میگم انگار همسرت بهت خیلی بیتوجه خیلی بیتوجه می‌خوای بریم چیزی بخوری؟ آره. هنوز یه کمی عقل برات مونده. چای خوشم فرسوی. حقمستم تا چیزایی رو آماده کنم و بهت بگم ولی با دیدن قیافَت بازم پول چطوره؟ ritu sich da deine schrelle hasen من خونم دروگ مراقب خودت باش پول حالا میتونی بیایی دوست دارم سلام پده سلام پول چطوری؟ عالیه مامان اجازه داد دیرتر بخوابم چون میخواستم با شما صحبت کنم دلم براتون تنگ شده منم دلم تنگ شده مامان گفت به محصه این که تموم شد با ما برمیگردی خونه به محض این کارم تموم شد به در زمین چطوریه؟ خیلی زیباست تعدادی چیزهای شگفتنگیز میبینی با تعدادی دوست پیدا میکنیم مامان گفت توی پرواز اونا ما رو به مدت یک سال خواب میکنن درسته؟ درد داره؟ نه خیلی یه دفعه خواب بیدار میشی میبینی تو خونه من روز تولدم خوابم تولد بعدید دو تا حدیه برد میارم نمیتونین با ما بیاین الان نمیتونم که؟ okay. زود درست دارم پدر منم درست دارم پهور مراقل مادرت باش هتمه پرد ان می بینم پدر <تصفح> یک کمک کوچیک ازتون میخواستم؟ آچ می زدم قرار شما از ما محافظت کنید پلیس شما هستید این کار شماست؟ افرادت کجا هستم؟ افراد من افراد من یه مش اشغا؟ تو این جهنم چیکار میدونی؟ رفتم دفتریت که بهت کمک کنم که تو منیتور دیدم داری یه راست میری طرفشون خوبه بشه نخورده بیا باید جلوی خون رو بگیرم دیدی کدوم طرف رفتم؟ رفتم به بخش عملیتی مدن قصد دارم رو به رود در بیان جای غربی رو میتونی بگندهی؟ باشه من سعی می کنم دورشون بزنم من نونم اشتباه طلاقی نکنی من شخصیت متظاهری ندارم فقط موقعا خول شدم من میرم بیرون توم از اینجا برو برو دیگه میخوام کمکت کنم جر رو کن میخوام کمکت کنم پس درای راه رو ها را رو گفت کن و به راه روی را شماره پنج هدایتون کن احساس دی نشد میتونم کمکت کنم عالی بود نیروی زرهی اومد فقط کمی دیر کردی مارشال حالش خوبه؟ کم و بیش کجاست؟ یه جای اون بیرون بیرونه کجا؟ من از کجا بدونم روید تو گل خونه باشه Cihandan! موازود چطوره؟ موازود؟ خوبه داشتم میرفتم یه چیزی بخورم گفتم بیام ازت خداحافظی کنم تو دوست خوبی هستی ممنونم خوب. من باید ازت ممنون باشم مدت ها بود تو این سیاه جل وجود نداشت توامم من دیگه باید برم منم همینطورم الانه که گرد و قبر زیادی اون پایین بپیچه کارت عالی بود کارت اونم عالی بود متشکرم؟ هایام از اونیل به کرول به موقع به پرواز میرسم به لیتو برام بگیر کارم انجام شد حالا از طرف من ببوس بی سبرانه منتظر خوابی یک ساله در کنارت هستم اونیل